عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و والسلام و على رسول الله و آلهی آل الله و لعن الدائم على علی عدائه الله وعجل الله اللهم في فرج مولانا بقیت الله یه صلاباتی به همه در روزشتگان. مسلمین و مسلمات مؤمنین و مؤمنات انبیا اوسیا اولیا علما خصوصا امام راهل عزیم و و شاهدا خصوصا حاضقاسم سلیمانی ادایت بفرمین عرض میشه که سه تا نکته در مقدمات بحث عرض بکنم مقدمی اول اینکه معانی مختلفی برای مکتب شناسی شده خب اون زمانی که ما شروع کردیم قبل از بندم بعضی بزرگان شروع کرده بودن ولی خب بعد هم یه مقدار مخالفت شد و اینا حالا الحمدلله بعضی از اون بزرگانی که مخالفت کردن خبششون هم دارن مکتب شناسی میگن ولی به هر حال معانی مختلفی اراده میشه از بحث مکتب شناسی یک معنا مبناشناسیه یک معنایی که من دیدم یکی از اساتید بحثایی داشتن تقریبا میشه گفتش که ایشون مبانی کاربردی علم اصول رو گفتن ولی خود مکتب شناسی هم انواع مختلفی داره بعضی بزرگواران مکتب شناسی که میگن کلن روش استنباط رو توصیف میکنن ما ارزمون اینه اینا خب بحثهای مفصل میتله ما ده جلسه بحث راجعه معنای مکتب شناسی و معنای مختار داشتیم اما خلاصه خدمت شما عرض بکنیم مکتب شناسی یک بحث اعتباریه یه وقتی ما بحث میکنیم از وجود و ماهیت وجود و ماهیت در خارج موجوده کسی نمیتونه معنایی رو به اونها تحمیل بکنه و ما به ازا داره ما این وجود اون ماهیته و اینا خودشون برای خودشون اون احکام خودشون رو اجبار میکنن و میارن اما چیزی که اعتباری باشه ما به ازای خارجی نداشته باشه که کسیری از بحثا همجوره مثل علم اصول مثل علم دینی و خیلی از بحثا یکی هم مکتب شناسی این وابسته به اغرازه یعنی تعریفی که ما میخواییم از مکتب شناسی بکنیم این عمدهش وابسته به غرضه. غرز ما از مکتب شناسی چیه؟ غرز ما ارائه سازوار و نظامند سبک استنباتی یک مشتهده این بحثی که بنده دارم ذیل مکتب شناسی رهبر معظم انقلاب و بعد موضوع شناسیشون میگم اراده بنده اینه یعنی بررسی نظاممند و سازوار از اجتهاد اون فرد این یک مق... نکته و مقدمه اول مقدمه دوم یه وقتی که عرض کردم بعضیا ها شبه میکردن مخالفت میکردن این بحث رو مطرح میکردن که ما علم و داریم مکتب شنسی به چه درد میخوره اینم توجه به ما مفصل جواب دادیم باز اینجا مختصر عرض بکنم ببینید بحث فلسفه فقه شامل مبادی تصوری مبادی تصدیقی روش علم قلمرو و اهداف و تاریخ علم الان معمولا گفته میشه مکتب شناسی فقی از مبادی تصوری بحث نمیشه از مبادی تصدیقی بعضا بحث میشه بعضا بحث نمیشه از مثلا قلم رو و اهداف و تاریخ و اینا که بحثم نمیشه اونی که عمده بحث میشه بحثای روشیه خب مبادی تصدیقی علم فقی در علم اصول بحث میشه رویکرد کرد علم بحث حجیته ما بحث که آیا اجما حجیت دارد یا ندارد شهرت حجیت دارد یا ندارد زواهر کتاب حجیت دارد یا ندارد زاویه بحث بحث حجیته اما در بحث های مکتب شناسی بحث توصیفیه حالا این مکتب شناسی که ما داریم عرض میکنیم توصیف میکنیم که رهبر معظم انقلاب اینجور موضوع شناسی میکنن و اینطور خوب شناسی میکنند. به یک معنا بحثای علم اصول به یک بیان دیگه بحثای علم های بحثای دستوریه بحثای مکتب شناسی به این سبک بحثای توصیفیه پس جایگاه بحثای مکتب شناسی الان اون چیزی که نوعا گفته میشه بحث های روشیه ولی 6-7 تا بحث دیگه هم میشه داشت اما نوعا فعلا همچی بحثایی هایی اینم نکته دوم نکته سوم مکتب رهبر معظم انقلاب که بنده فکر میکنم قطعا ایشون جزء ساب مکتب هستن یه مکتب ترکیبیه روی ایشون در استنباد روی تاریخی تحلیلیه روی کردی که آیتولا بروجردی میشه گفتش به نوعی مبدع این روی کرد هستن ایشون زیل مکتب آیتولا بروجردی تعریف میشن حالا ما تعداد مکاتب هم گفتیم دلیلمون هم گفتیم باز اینجا نمیرسیم در حد یک ساعت یک کپسول دیگه خدا رحمت کن آجام روش دادیم گفتن که یه زمانی میاد که یه کپسول بهتون میدم میگم مشتهد شده. الان بحث ما اینجوریه. خب هم خوبی داره هم بدی داره. میدونید دیگه هر ویتامینی و کپسولی رو زیاد بخورین هم خوبه هم بده. ولی به هر حال کلنا خوبه. حالا می میکنیم یا نمیکنیم دیگه به ما. حالا عرض میشود که مکتب رهبر انقلاب به نظر بنده ترکیبیه روی کرده ایشون. در مباحث فقه سنتی رویکرد تاریخی تحلیلیه اما در مباحث فقه سیاسی چه از حیث موضوع شناسی چه از حیث احکامی که بار میکنن در مسائل مختلف قابل بحثه مثلا بنده بارها عرض کردم. فقه رهبر انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه اینو رو میکنه واقعا میدونید امام تا مدت اجازه بمبارانه شهرهای اراق نمیدادن گفتن که نمیشه بعد یه روایتی دیدن گفتن که اشکال نداره تا قبلش اطلاع بدید ما مثلا می‌خوایم بسره رو بمبارون بکنیم در برجان به نظر من کاملا مشخص بود که فقه خدکشی کرده رهبر انقلاب رو و خیلی از بحثای دیگه همین بحث هجاب و بحثای دیگه تا ایشون در این مباحث به نظرم کاملا روشنه که متاثر از امام خوهینی هستن ولی بحث امام خوهینی به خودش مفصله خب پس مکتب ایشون از حیث روی کرد خصوصا در مباحث سنتی روی کرد تاریخی تحلیلیه ولی در تحلیل موضوع و در مباحث فقه سیاسی ایشون میشه گفتش که ذیل مکتب حضرت امام تعریف میشن یعنی دو تا از دو تا مکتب تاثیر گرفتند باز مثلا من بارها عرض کردم استاد آیتول و دار. ایشون ترکیب مکتب آیتول خویی و مکتب شیخ حالا حالا کجاها مکتب آیتول الخوئی مفصله کجاها مکتب شیخ انصاریه مفصله اینا نکته سوم ابداعات فراوانی انصافا بینی و به این الله ایشون در بحث‌های موضوع شناسی داره ابتکار داره ایشون من علا تحقیق عرض میکنم فقیهی که نامآور باشه چه جوون باشه همسنه بنده باشه یا مسنتر باشه یا اصن باشه یا مراجع باشه همه رو من فقها و اصولا سعی کردم ببینم حالا بعضیشون ممکنه بعضیش، بعضی بحثاشون مثلا کمتر بنظارم اهمیت داشت اصولشون بیشتر اهمیت داشت فقهشون کمتر مثلا اصولشونو بیشتر دیدم. ولی بنده تا الان قدمام که باز من تجرایی که شده دیدم. ندیدم کسی در موضوع شناسی این مقدار مبنا و ابتکار داشته باشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم کلیت بحث ما در مکتب شناسی زیل دو بحث موضوع شناسی و هوش شناسیه. در بحث‌های موضوع شناسی و روش هم چون من سعی کردم ببینم مثلا ما برای شیخ مکتب شیخ انصاری که ما خدمت رفقا بودیم یک دوره من کل کتب شیخو تقریبا تروق دقیقی کردم. تروق نسبتا دقیقی کردم. بنده به این نتیجه رسیدم که این ستا نقطه مکتب ساز مبانی روش ساز اساسش مهمه توصیف دیگه نمیرسیم تو یک ساعتم بگیم مبانی غیر رویه ساز چیه مبانی رویه چیه اینا خوش بحثش مفصل میشه فقط یه اشاره بکنم همه قائل به حجیت ظهورن درسته ولی روش ظهورگیری آیت الله بروژه با روش ظهورگیریه غیر آیت الله برو مثلا فرق میکنه این یه مثال برای بحثه روشی اما مبانی ساز مثلا کسی مثل آیت شاهرودی آسد محمود شاهرودی بزرگ نه رحمت کنه رئیس قوه قضاییه ایشون قائل به حجیت اغلایی خبره این روش روشتازه چه در اعتبار خبر؟ چه در قبول خبر چه در رد خبر چه در حل تعارض در همه اینها چون ایشون یک مبنای متفاوت داره کلن رویششم متفاوت شده این مثال مبنای رویش ساز به نظرم این ستون تا نقطه مکتب سازه مبانی روش ساز مثالش رو زدم کسی که قائل به حجیت تعبدی خبر واحد نیست قائل به حجیت اغلایی مراحل. می دونید همه فوقه ها نظرشون این است ما یه عدله داریم یه یه چی داریم اصول عملیه ولی آیتالا برو یه چیزی دارن فرشل عدله ارشل اصول عملیه چیه؟ اصول متلقات اصول متلقات چیه؟ کتاب های که قدمایی مثل صدوق نوشتن و اینا عین متن روایات بوده ممکنه روایتش به ما نرسیده تا این متن که اومده متن روایته اگر ایشون دستش از عدل کوتاه بشه مرحله چیه سراغ اصول عملیه نمیره ایشون سراغ اصول متلقات میره در مرحله بعدیشون سراغ اصول عملیه میره این خودش یه مکتب شده مراحل استنباط متفاوته حالا این در حب شناسیه ولی رهبر معظم انقلاب در موضوع شناسی واقعا چند تا مبنای متفاوت داره اینم عرض میشود مراحل و روشها روشها رو عرض کردیم همه قائل به حجیت زواهر هستن منتها آیت الله بروجردی به روش خاصی ظهور میگیرن به چه روشی به تعبیر بنده ایشون بدونه اینکه هرموتیک بدونه ظهور هرموتیکی میگیره یه مطلبی از ایشون نقل شده که فقه ما هاشیه ای فقه اهل سنت این مورد اعتراض بعضی بزرگان واقع شده ولی منظور ایشون چیه منظور ایشون این هستش که فق اهل سنت غلبه داشت امام میومد میگفتش که من قیاسش رو قبول ندارم حاشیه میزد یا می گفتش که من این تیکه رو با این شرط قبول دارم بحثش مفصله مثلا در این که چرا ائمه قیام نمیکردن بین شیعه زیدیه خوارج اهل سنت اختلاف بود حضرات قالب شراعت بودن گفت این شراعتی داره که ما بخوایم قیام بکنیم حاشیه داشتن اصل قیامو قبول داشتن که ما نباید حکومت جور رو تحمل بکنیم ولی اینکه باید قیام بکنیم یا نه قائل به قیام در هر شرایطی نبودن اما زیدیه می گفتن نه امام کسی است که قائم سیفه حاشیه داشتن حالا تعبیر هرموتیکی چی میشه از نظر هرموتیک میدید ما یه متن داریم یه متن داریم یه زمینه متن داریم متن ما چیه روایت اهل بیت علیه مستلام زمینه متن چیه فتاوا و احادیث اهل سنت من برای اینکه بفهمم که امام به چه مسئله ناظر بوده و چه مسئله هاشیه داشته باید اونو بدونم اگه ندونم نمیشه حالا من این مثال معمولی نسبتاً امروزی بذارم مثلاً امام خوهینی فرمودن که مجلس در رحص امور است بعد توی یه جمله دیگه دارن که کشاورزی در رحص امور است توی یه جمله دیگهم دارن که نماز جمعه در رحص امور است خب یه زمینه بوده دیگه که اینا سادر شده مثلاً مجلس انقلابی بود اومد بنی صد رو عدم کفایت سیاسی داد بعد اختلافاتی شد امام فرمود مجلس در رس امور است اون زمینه مهمه زمینه را اگه ما بدونیم نظرمون عوض میشه لذا کثیری از روایاتی که فوقه ها فکر میکنن اطلاق داره ایشون میگه اطلاق نداره ناظر به فلان مسئله است که اهل سنت قائل بودن ولی امام میخواد بگه که من اون اطلاقه رو مثلا قبول ندارم اون چیزی که توی ذهن اهل سنته قبول ندارم ماتنم که چیه؟ اهل بیت علیهم السلام پس ایشون روش ظهورگیش روش هرمونتیکیه ظهور حجتون همون میگن ظهور عرفی حجتون منظورای ایشون میگه اگر میخوای ظهور عرفی درست بگیری باید زمینه متن رو بدونی اگه ندونی نمیشه این روشه روش ظهورگیری ایشون متفاوته خب حالا بیام در بحث رهبر معظم انقلاب مبانی ایشون که مربوط به مبانی روی ایشون که مربوط به لغت مبانی ایشون که مربوط به عرف مبانی ایشون که مربوط به اقوال فقهاست و یه مبنای دیگه من این مبانی رو میگم بعضی هاشون مثال نمیخونم چون نمیرسیم که بخوام بخونم ولی بحث های مهمتر رو عرض میشود که می‌گیم که مبناش چی متنش رو در صفحه 136 کتاب قنا یه مبنایشون عدم جمود به لفظه بعدیشون مثال میزنه که آب همم معتصمه خب این یعنی چی و آقای بروجردی رفتن نقش های همم آوردن و عرض می شود که بعد تفصیل کردن که آب حمام که معتصمه یعنی این نه این تصوری که ما داریم چون حمامای های قدیم هفت تا مین خزینه داشته اون دیگه قطعا آب کور بوده دیگه اندازه آب کور بوده. یک مبنا عدم جمود به لحظه خیلی مبنای مهمیه ما نوعا الفاز رو خیلی خشک میفهمیم حالا خصوصا تو این بحث رنا به نظرم خیلی روشنه که فوق های ما اون تراوت ذوقی که رهبر انقلاب داشتن نداشتن برای بحث غنا نوعا اینجوری بوده چون غنا رو یا با لغت تعین معنا کردن یا مثلا با اقوال فوا این یک مبنا مبنای دوم این هستش که لغت و عرف یک چیزن لغت زابطه مرد کردن و محدود کردن فهم و مهدد کردن فهم عرفیه اینم خیلی مبنای مهمیه چون ممکنه یک کسی بگه نه آقا لغت و عرف دو تا چیز هن. بعد این خیلی تفاوت رو پیدا میکنه دیگه وقتی بحث کپسولی میشه ما نمرستیم ایس از این رو توضیح بدیم صفحه 45 یه بحث غنا در این کتاب غنای رهبر انقلاب که چاپ شده اینو ایشون تذکر دادن یه نکته خیلی مهمی که ایشون تذکر میدن این استش که مبانی مربوط به مربوط به عرف این استش که عرف زمان روایات و عرف دوران صدور روایات ملاکه در این بحث این های مکاسب ایشون رو دادند دادن به ما من این کردم اینا رو اینجوری کردم از من نخواین چون یه عالم اهدومیسا و از ما گرفته دفتر رهبر که اینا رو به کسی ندیم ولی من از روی متن درسشون برای شما میخونم این مطلبی که من عرض میکنم که ایشون میگه عرف زمان روایات ملاکه بعد شما برید این بحث رو با های دیگه مقایسه بکنید ببینید آیا دقت ها رو داشتن مراد از عنوان در باب معاملات چیست؟ جلسه 233 مکاسب محرمه تاریخ 22 هفت هشتاد هفت ایشون این بحث رو مطرح کردن مراد از عنوان قش در با اون معاملات چیست به روایاتی, به روایاتی که در این باب وارد شده است مراجعه می بلکه به تمامی رو به دست بیاریم. روب بقا ایلن چرا به روایات مراجعه می و به عرف مراجعه نمی کنید آقا قشی بحث عرفی دیگه مثلا شاره مگه چیز خاصی آورده تو قشرش، یعنی الانیشون معنام کن همچنان که در تشخیص انابین موضوعات احکام شرعی آنجا که موضوع شرعی نیست بعد به عرف مراجعه کرد سلات و اینا که نیسته شید عرف برده در اینجا هم ببینید عرف قشت را چه چیزی می داند و روایات باب قشت را بر همین معنا حمل هم کنید ببینیم عرف به چی میگه گه قشت هم به همون معنا هم کن. جواب این است که اولا آن عرفی که باید به آن مراجعه کرد عرف امروز نیست بلکه عرف دوران صدور روایت است من واقعا تقریبا هر شرح مکاسایی دستم رسیده دیدم خصوصا از متاخری من هنوز نیدم این رو. ما از آن عرف خبر نداریم و نمی غش را در چه چیزی به کار می بردن امروز اگر در عرف ما فارسی زبان ها گفته می شود قش ما قشت را در اختلاط و مزجد جنس به غیر جنس یا جنس خوب به جنس ردی و پست می دانیم مثلا یکی مثلا می این روغن قش دارد لکن بلا شک غش منحصر در این معنا نیست این معنا یکی از مصادیق قش است که از روایات هم می توان فهمید بنابراین عرف این زمان ملاک نیست از عرف آن زمان هم اطلاع درستی نداریم بنابرین اولا عرف موضوع را برای ما روشن نمی‌کند ثانیا تیکشو که در اینجا که به روایات مراجعه می‌کنیم عرف آن زمان را از روایات به دست می‌آوریم ایشون مفصل به روایات باب مراجعه می‌کنه که عرف اون زمان رو به دست بیاره برید مقایسه کنید ببینید کی این کارو کرده یه نکته دیگه در باب مبانی مربوط به عرف خیلی نکته جالبیه رجوع به کتب لغت برای اخز معنای عرفی و چیزی که حقیقت عرفی پیدا کرده درست نیست یه مثال ساده بزنم آقا من الان میگم سپاه شما چی تو ذهنتون میاد؟ همین سپاه الان تو ذهنتون میاد که یه ارتش مثلا نامنظمه، ارتش جنگی نامنظمه. ولی اگر قبل از انقلاب میگفتن سپاه همه سپاه تو ذهنتون می اومد. اگه ارتش همه ارتش تو ذهنتون، ارتش و سپاه اصلا یه معنا بود. ولی الان میگن ارتش همه یه چیزی تو ذهنشون میاد، سپاه هم که میگن یه چیز دیگه تو ذهنشون میاد. در بحث قنا همین اتفاق افتاده. قنا یه معنی اولی داشته. لغتونو اوورده الان شما برید هر کتاب لغت این خدا هر چی رو باز کنید سپاه رو معنی کرده این معنی سپاه چیه معنی است که قبل از اینکه جمهوری اسلامی شما این سپاه اینو بیاد به دست اومده لغت میاد اینو میگه اما شما فرهنگ لغتای جدیدم که ببینید هیچ وقت نمیاد بگه سپاه یعنی سپاه پاستاران انقلاب اسلامی که مثلا در سال 1358 به فرمان امام تشکیل شد و این از این چیزا نمیگن که در غنا همین اتفاق افتاده صفحه دی کتاب غنا ایشون این نکتر رو تذکر دادن پس اینکه ما در تعریف غنا برای فهم عدل غنا به قول روغوی مراجعه کنیم که یکی میگوید غنا مد و دیگری ترجیه و صد بعد ده پانزده تفسیر لغوی رو کنار هم بگذاریم بعد هم بگوییم این کلمه مجمل و مبهم است درست نیست چون لغوی اصل لغت رو معنا می کند و غالبا کاری به معنای دوم ندارد صفحه 208 ایشون مثال زده مثلا مصحف مصحف یعنی چی؟ مصحف معنای لغویش یعنی کتاب معنای عرفی سانویش چی؟ یعنی قرآن دوستانی که دارم میان تو عالم مثال ما مجرم شیم شوخی کنیم آره. یه ذره فلسفه خوندیم دوستان که دارم میرن عالم مثال یعنی دارم میرم این دیگه حتی خود ساعت ما بد موقع است دیگه انصافاً الان دوستان بعد بخورم بخوابم ولی خب من واقعاً به سهم خودم تشکر میکنم همه از شهرستان تشکر آوردین واقعاً همت داریم برای یه کپسول خوردن تا اینجا بیایم خیلی همت عرض میشود که اینم یه نکته از مبانی مربوط به بحث عرف که مسئله مهم میست تمام حرف ایشون در بحث غنا همین استش که این معنای اول و معنای دوم خلط شده با هم دیگه و افرادی اومدن برای گرفتن معنای غنا از کتب لغت استفاده کردن بعد تبعات بعدی پیدا کرده هنوز که هنوزم میدونید ما داریم که همین مجالس تلاوت قرآن مجلسی رو حرام می‌دونن دلیلشون هم روایاته که ایشون مفصل توضیح میده که بابا با این روایات بحث دیگه ای رو مطرح میکنه خب اینم یه مبنای دیگه یه مبنای دیگه ایشون دارن متنشون نمی‌خونم فقط عرض می‌کنم ایشون یه نکته جالبی دارن آقایون وقتی به اقوال فوقان ما راجع میکنن همه با هم یکیه چه صاحب جواهر که مثلاً اصالتاً اسفانی بوده؟ چه خنساری که اصالتا دسفولی بوده؟ چه نمیدونم اون فقی؟ همه براشون خیلی فرق نمی کن. ایشون میگن من به نظر فقه هایی که اصالتاً عرب هستن مثل صاحب مفتحال کرامن، مثل جواد عاملی مثلا اینا برای من فرق میکنن. اون کسی که اهل لسانه با اون کسی که اهل لسان نیست برای من فرق میکنه من این دقتم تو کار آینه دیگه ندیدم که بین فقهای اهل لسان و غیر اهل لسان فرق بذارم اینم یه مسئله دیگه یه مسئله دیگه ای که ایشون بارها تأکید میکنه لزوم توجه به خصوصیات زمان و مکانه در غنا صفحه 135 زیل همون عدم جموده به روایات ایشون اونو توضیح میده من حالا اونو بخونم اینو اینجا بخونم تو صفحه 244 یه بحث دیگه ای باز در همین مکاسب محرمه هست عینا تقریبا همون مطالبو میگن ما در تشخیص درست موضوع در یک دلیل شرعی نمیتوانیم به ظاهر لفظ جمود کنیم و خصوصیات زمان و مکان آن موضوع را اصلا ملاحظه نکنیم مرحوم آقای بروجردی زمانی که ما درس به درسه در باب طهارت میرفتیم می میفرمودند باید دقیقا دید آب حمام که معتسم است در اصل این روایت ما روایات چه چگونه بوده است این موضوع باید مشخص بشود یکی از ماه های معتسسه ما است مثل آبکر آب جاری، آب ها ایشان بر حسب آن تتب و اطلاعات وسیعی که داشتن تصویر حمام های آن دوره را به دست آورده بودند و در درسشان بیان می کردن. مثلا می گفتفتن حمام ها دارره ه بیت بوده، بیت و نار چه چه چه؟ و مثل حمام های قدیمی خود ما که یک سرهممام داشت بعد وارد خود حمام گرمخانه شدیم ایشان حمام قدیم، هفت قسمت داشته این یکی که لزوم توجه به بحث زمان و مکانی که اون روایات صادر شده یکی دیگه در عرض می شود که در بحث تنجیم سریح میگه ایشون ما می‌خوایم ببینیم آن چیزی که در این روایات نه شده چیست تقریبا همین بحث های سنتی ایشون تماما نوآوری داره بحث سهرشون نوآوری داره بحث تنجیم نوآوری داره بحث قش نوآوری داره بحث رنا نوآوری داره تماما اینا ایشون نوآوری و دقت‌های ویژه دارن واقعا حیف که درسایشون چاپ نمیشه دیگه بعضی‌ها کاتولیک‌تر از باهانی البته این بحث قنا که چاپ شده چون من همه رو دیدم این بحث قنا بحثی است که آقا در اوج فتنه 88 گفتند که البته شما هیچ تزلزلی توی بحثاشون نمیره ولی مفصلترین ترین بحثی است که معلوم ایشون راجوش فکر کرده و تتبع کرده. لذا نوآوری خیلیشون حرف خیلیشون تو این بحث غنادره. اگر اینو چاپ کردن اولین کتاب از بحث مکاسب محرمه بی مبنا نبوده. واقعا کتاب خیلی پر مطلب و پر نکته ما می ببینیم آن چیزی که در این روایات نه شده چیست یعنی تنجیمی که نه شده چیه بنابراین یک چنین چیزی با من عرض کردم اوزا و احوال عهد صدور روایات را اگر بدانیم معنای روایات را بهتر میفهمیم، بلکه بدون این گاهی معنای روایات را اصلا نمی شود فهمید در آن زمان صدر اسلام یعنی زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و امیر علیه السلام به نحوی این افکار وجود داشته حالا این تیکه در بحث بیت غنا باز ایشون این نکته رو دارن یعنی بیت غنا همه فکر میکردن خونه یه که توش موسیقی هست ایشون توضیح میده که افرادی بودن خونه های اینا داشتن در اونجا زن آوازخان می آوردن نه خونه ای که توش موسیقی باشه نه کاباره اینجوری به شما بگم اون چیزی که گفته شده که به بیتی که در بیت غنا فلان میسر اون احکامی که میگه که این جوریه اون منظور کابار است نه خونه ای که توش حالا مثلا موسیقی است حالا بله اگر خونه مداوم توش موسیقی باشه ممکنه بگیم که احکامشو داره بیت القنام همینطوره توی همین کتاب غنا ببینید باز همینه و از این چیزها باز ایشون در جاریه مغنیه باز من دیدم بحث و باز کردن که جاریه مغنیه چرا هستن توی روایات اومده چرا مرد خان نیمده باز دقیت تاریخی تأکید در تأکید ایشون دارم و بسیار تأکید درست و مهمی هست نمونه های فراوان که اگر کسی توجه به خصوصیات زمان و مکان نکنه این موضوع رو درست نمیفهمه. چهار تا مبنا یه بار دیگه ارزمونن. مبانی مربوط به لغت، مبانی مربوط به عرف، یه مبنا در مورد اقوال فقهایشون داشت که به های عرب مراجعه کرد یه مبنام لزوم توجه به خصوصیات زمان و مکان. این از مبانی، اما مراحل مراحل کار ایشون در موضوع شناسی یه چیزی که من فقط توی کار ایشون دیدم نه اینکه بقیه فقها متوجه نباشند که این موضوع چه سنخ موضوعیه موضوع مثلا عرفی هست یا نیست نه اینو همه فقها متوجه هن. غنا موضوع چیه مثلا همه متوجهن یا نمیدونم قش موضوع چیه یا ربو موضوع اینا همه فوقا متوجهن نکته ای که هست ایشون رو این بس خیلی سرمایه‌گذاری میکنه سنخ موضوع ما چیه ایشون مکرر روش سرمایه‌گذاری میکنه توضیح میده و بعد یه توضیح بعد از اونی داره پس مرحله اول اینو من عرض بکنم ببینید تمام بزرگوارانی که من دیدم دو مرحله بیشتر تو کارشون نیست بررسی موضوع تعیین موضوع من تنها ایشون رو دیدم که حالا هم در اون تعیین موضوع ابتکارات زیادی دارن هم تو مراحلش فرق میکنه مرحله اول ایشون در بعضی موارد تعیین سنخ موضوع من برای شما متن بخونم در بحث سحر در بحث شیرین سهر که به زودی خیلی مطلوبه میشه دنبال سحر ندید ولی حداقل بحث بحث رو کار کنید میدونید که الان حکی میاد مشاوره میگه من سهر شدم تو تهران که فراوونه میگه شوهرمو رو سهر کردن یا نمیدونم زنمو رو سهر کردن من نمیدونم چی شدم سحر شدم عرض میشود که بله خب البته مسلم است جلسه دویست و تاریخ بست و, پنج، یکی هشت و هفته. البته مسلم است که کلمه سهر حقیقت شرعیه ندارد مراد از آن در روایات همان مفهوم عرفی آن است لاکن گاهی اوقات حسه ای از یک مفهوم عرفی مشمول حکم شرعی است و در ادله لفظیه حدودی برای ذکر کردن که انسان وقتی مراجعه میکند بفهمد می موزه حکم شرعی چیست حالا بنابراین یک بحث این است که ما به معنای سهر برسیم چه از طریق ادله لفظیه و چه از طریق کلمات لغوی و فقها آن وقت باید ببینیم آیا عدله حرمت سهر اطلاق دارد یعنی همین چیزی که مفهوم سهر را تشکیل می دهد و از عدل فهمیده می شود نسبت به همین مفهوم آیا ادله مطلق است یا دلیلی داریم بر اینکه بخشی از این مفهوم مورد نظر است این بحث مهمیه یک کانالی نوشته بود که دیروز یکی از ترین کلیپ های دنیا کلیپیه که فرد جلوی همه جلد چشم دوربین،, دوربین های موبایل افراد مختلف یه عده افراد رو از یه اتاقه که شیشه‌ای از سمت راست منتقل می‌کنه به اتاقه اتاقه که شیشه‌ای سمت چپ آیا این سر هست یا نیست بحث مهمه نسبت به همین مفهوم آیا عدله مطلق است یا دلیلی داریم برای اینکه که بخشی از این مفهوم مورد نظر است مثلا چی آقا سهری که ضرر داشته باشه حالا آیا سهر بود یا نه ولی یه بند خدایی میگفتش که من از یه آخوندی طلبکار بودم اینم هی تأخیر مینداخت. هر موقع من میرفتم دم خونه زیر لب یه چیزی میگفت من اصلا نظرم عوض میشد بر میگشتم حالا اشکال نداره حالا پول ما رو خوردی اشکال نداره و هموقع داری بده آیا این مثلا اشکال داره یا نه یا سهرهایی که افراد بسیار نادر مثلا کاری میکنن که واقعا بین زن و شوار اختلاف میشه یا کاری میکنه که طرف مثلا خودکشی بکنه یعنی سهر مزر یعنی الان این بند خود رو از این منتقل کرد به اون موزر نیست بله توش تیریلیاردی میلیاردی پول البته بالاخره همون بازدید که توی یوتیوب بخوره کلی پول میده یوتیوب ولی آیا منظور این مثلا اینم هست یا نه در حال نسبت به همین مفهوم آیا عدله مطلق است یا دلیل داریم برای اینکه که بخشی از این مفهوم مورد نظر است؟ یعنی اراده جدی به حسه ای از این مفهوم تعلق گرفته است. یعنی مقایت هایی دارد اگر اطلاقی پیدا کردیم هایش رو هم پیدا می‌کنیم، خب. ببینی ایشون اینجا این اومدن تاکید کردم. در جلسه 218 چند ایشون یه مقدار دوره بحث کرده میگم. موضوع سه را اگر بخوایم به دست بیاوریم یک راه مراجعه به کلمات لغوی و پیدا کردن ریشه لغت و یا مراجعه به کلمات فقه هاست به نظر ما این راه خیلی کمک نمی کند که بتوانیم این موضوع را کماه و حقه تنقیق کنیم در حالی که تمام فقه ها قبل از ایشون ببینید همین یا از لغت استفاده کردن یا از اقبال فقه ها استفاده کردن ایشون میگه این دوتا راه که همه فقه های قبل از ایشون رفتن به درد نمیخوره چرا؟ زیرا در بین این کلمات اینقدر اختلاف وجود دارد که واقعا انسان یک وجه جامع محسوس مضبوطی نمیتواند پیدا کند. وجه جامع محسوس مضبوط منظور همون قدر متیقنه اگر انسان بخواهد در کلمات فقها سیر کند، نمیتواند تواند معنی سهر را از کلمات فقا و یا به دست بیارد. این یک راهی که صد درصد به انسان کمک بکند نیست. راه دیگر این است که ما مراجعه بکنیم به عدلهی که در آن سهر تحریم شده است. عدلهی که در آن یا حکمی برای سهر بیان شده یا توصیفی از سهر در آن شده است. ببینیم درباره بار سهر در این کلمات ولو به صورت غیر مستقیم چه چیز گفته شده است چون این بزرگواران که نمیخواستن تعریف سهر بکنن امام که میگه سهر حرامه که نمیخواد تعریف سهر بکنه حالا طرف اومده میگه که آقا مثلا من اینجوری شدم آیا این سهر حرامه یا نه؟ یا فلانی فلان کار کرد آیا این سهر حرامه یا نه؟ ما میفهمیم که آیا حکم شامل این دایره میشود یا نه راه دیگر این است که ما مراجعه کنیم به ادله که در آن سحر تحریم شده است ادله ای که در آن یا حکمی برای سحر تعیین شده یا توصیفی از سحر در آن شده چه در کتاب عزیز الهی چه در روایات ببینیم در باره سحر در این کلمات ولو با صورت غیر مستقیم چه چیز گفته شده است چون این بزرگان که نمیخواستند تعریف سحر بکنن ببینیم از مجموع اینها حدود اجمالی و تقریبی سحر چیست قدر متيقن هایی را می شود پیدا کرد تذکر دادن سه مفهوم عرفیه چند بارم ایشون تذکر میده الان این صفحه 573 دوباره صفحه 607 یه بار دیگه ایشون میگه ما چرا یک مفهوم عرفی رو نرفتیم از عرف اخص بکنیم این یکی از اتیزهایی که من دیدم بارهاییشون تذکر میده که این موضوع مثلا موضوع عرفیه ولی چرا ما سراغ عرف نمیرویم در خود قنایشون این کار میکنه این مراحل کارشون در موضوع شناسی گاهی اوقات ایشون تعیین سنخ موضوع میکنه گاهی اوقات ایشون میاد دقت میکنه در اون چه موضوع حکم قرار گرفته انصافن ایشون مورو از ماست میکشه تو اینجا من هیچ فقیهی ندیدم این مقدار دقت و ذرافت توی موضوع شناسی خیلی برای من عجیب بود من خواهم فهم که علمیتشون امیت ایشون مثلا به طور بچه طلبه قطعا ایشون, ایشون ولی فکر نمیکردم این مقدار دقت این مقدار ظرافت با این همه کارای ایشون می دونید, تنها کسی که ساواک ازش تعبیر خمینی کرده ایشونه خمینی مشهد نه شهید بشتی نه شهید مطهری نه با هنر نه رجایی هیچ کدوم از این روحانیایی که دور و امام بودن با نزدیکی و دوری هیچ کدومشون سواک ازش تحبیر خمینی مشهد نکرده یعنی ایشون کم اینکه که امام کل کشور رو به حرکت در آورد ایشون مشهد رو به حرکت در می آورد با این همه کار این مقدار معلومه که ایشون واقعا زحمت کشیده و تو جوونی زحمت کشیده همین حدودهای شما اگر واقعا زحمت بکشین مثل ما عمرتون حضر ندیم خب یه مثال بزنم دو تا مثال میزنم آتی نه آره دو تا مثال یه سلامات بفرست بحس غش خب غش در نقطه مقابل آن یعنی بدخواهی نصح یعنی خیرخواهی غش در نقطه مقابل آن یعنی بدخواهی روشن است که مراد آن نصخ در, اسی... در نصیحل لائمت المسلمین و یا نسخ المسلم که در برخی از روایت وارد شده است و یا آن نصحی که مربوط به قلب فقط است نیست مراد عمل خیرخواهانه است نه نیت خیر یا نیت بد در شهر مقدس حکمی ندارد محل بحث آن نیست در باب محل بحث این نیست که انسان در دل بدخواه باشد بلکه مراد بدخواهی در باب معامله با افراد و در عمل است در واقع عمل بدخواهانه است این یک معنای عام نیست خب بعدیشون میاد مثالایی میزنه و بعد اون نکتهی ای که ایشون میگه اینه این قشش رو ببینید اولا ایشون عمل بدخواهانه ترجمه کرد این یه نکته نکته دیگه این هستش که ایشون میفرد آنچه انسان در مجموع میفهمد این است که در معاملات و در بازار مسلمین فریبگری و خودعه نباید باشد آن چیزی که از معنای غش استفاده می شود به حسب روایات در باب معاملات این است که این نوع غش در معاملات حرام است غش آن چیزی است که در آن معنای خدیعه وجود داشته است یه متنی من خوندم براتون که ایشون میگه که اون غشی که در زمان عرض می شود اهل بیت هست ملاکه در جلسه 233 مراد از قش در باب معاملات چیست به روایات مراجع میکنید ببینید مراد از عنوان قش در باب معاملات چیست به روایاتی که در این باب وارد شده است مراجع میکنیم بلکه که بتوانیم معنای قشت را به دست بیاوریم قائل بقائل نگگویل چرا به روایات مراجع میکنید و به عرف مراجع نمیکنید یه دقتی کرد کردیشون که این چیزی که موضوع حکم واقع شده چیه بعدیشون میگه که غش الان یه معنایی داره تو فارسی مثلا ممکنه تو کلمات دیگه هم یه معنایی داشته باشه معلوم نیستش که این معانی در دایره استعمال کلمه غش در زمان بیت بوده باشن ما کار به اون داریم که در زمان اهل بیت چی غش استعمال شده ولی او که الان تو فارسی اگه شما بیاید گندم معمولی و با گندم غیر معمولی قاطی کنی بگی این قشه ممکنه در زمان اهل به این قش نمیگفتن ممکنه وسیع تر بوده ممکنه محدود تر بوده ایشون میگه ما باید روایات مراجعه کنیم من این متن خوندم این تیکش رو باز میکنم سانیا در اینجا که به روایات می میکنیم عرف آن زمان از روایات رو به دست میآوریم این چیز قبلیشو من عرض کردم توی بحث دیگه که فرمودن که حالا باز این تیکه شما میخونم اولا آن عرفی که باید به آن مراجعه کرد عرف امروز نیست دقت کرده ایشون که موضوع اون چیزی که موضوع حکم قرار گرفته چیه ما نوعا این دقیقتها رو نداریم آمین قشقش معلومه دیگه غش یعنی مثلا فریبکاری چه فلان خب اینو که ایشون هم گفت حالا به, به واسطه زد معنی کرد کردی معنی خیلی جالبی کرد ولی این که ما دقت کنیم که ممکن است غشی که ما از او فریب کاری و چیزهای دیگه میفهمیم در زمان احلبیت یه دایره خاصی داشته ما باید بریم اونو به دست بیاریم اینو من نیدم کسی این دقت رو بکنه ایشون میگه ما به روایات مراجعه میکنیم چرا؟ چون میخوایم بریم اون دایره استعمالو به دست بیاریم. چی موضوع حکم قرار گرفته در بحث رشوه در بحث رشوه همه اومدن ببینید این جوریه. گفتن رشوه در باب غذا رشوه در غیر باب غذا ایشون میاد دقتهایی میکنه میگه آقا اصلا رشوه در استعمال روایات در مطلق غذا و غیر غذاست اینجوری نیستش که ما رشور رو در باب قضا و غیر قضا بخویم چون حکمش که معلومه همه گفتن حرامه هراشی ولی مرتشی کلاه فنار فننا تو نوع فوقه ها اومدن رشور رو در باب قضاوت و دادن حکم گرفتن ایشون میاد یه بررسی مفصلی میکنه میگه نه آقا اینجوری نیست رشوه در استعمالاتی که در روایات داریم برای غذا و غیر غذا هر دو تاش به کار میره چه شما پول بدی که شهرداری سند ملک تو بده چه شما پول بدی که این حکمی که له شماست قاضی با شما لج کرده بزنه چه شما حکم بدی که حکمی خلاف شماست و شما پول بدی که این حکم رو له شما به همه این قش همه اینا رشوهست من ندیدم کسی این دقتو بکنه که آقا رشوه کلا در عرض میشود که چه غذا چه غیر غذا در هر دوتاش استعمال شده این فقه که اومدن این بحث و مخصوص به باب غذا کردن در صفحه در صفحه که به شما فایده نداری بگیم و صلوات در جلسه 180 تاریخ 29 7 86 بنابراین اگر ما بخواهیم مسئله را درست تحریر و تبیین کنیم هم باید معنای رشوه را بدانیم که چیست تا ببینیم که این روایاتی که در باب رشوه است چه دائرهی را شامل می شود و هم آم مقداری که دلیل بر حرمت رشوه داریم از آیات و روایات دائرهش چقدر است بعد ایشون عرض می شود که در بحث دوباره این بحث هایشون یه جای دیگه مطرح میکنه این جلسه هست بله تو همین جلسه هست دوباره ایشون میگه ببینیم در باب روایت آیه در باب یا در باب قضا نیست میاد ایشون روایات رو میاره تا نتیجه میگیره که رشوه اصلا اینجوری نیستش که در باب فقط عرض میشه که قضا باشه صفحه 300 بله جلسه رو من بگم خدمت شما جلسه 181 روایات رو ایشون میاره به نظر ما ظاهر این روایت این است که رشوه استعمال میشه در اعم از غذا و غیر غذا و ایشون نظرش اینه که رشوه در غیر حکم هم صدق میکنه ایشون به روایات خلاصه شاهد میاره؟ بله که این رشوه فقط مربوط به باب غذا نیست حالا من یه موردش که باز ایشون از این روایات شاهد آورده ارز کردم دقت در این که حکم روی چی رفته این رشوه درست آقایون اومدن اول همه تقسیم کردن رشوه در باب غذا و غیر غذا منطقه ایشون از استعمال روایات اثبات کرد که این فقط مخصوص به باب غذا نیست. رشوه در غیر باب غذا هم استفاده شده. مفصل ایشون روایات میاره. چند دسته ایشون روایات میاره. پس در مراحل یکی تعیین سنخ موضوع. یکی دقت در اون چیزی که موضوع حکم قرار گرفته. که بعضی آقاد ایشون مثلا جالبه. در بحث تشبیب بلمرعت المؤمنه ایشون میگه اصلا این بحث الان جا نداره. چرا جا نداره چون تشبیب چی بوده تشبیب این بوده که شعرها عاشق یه سری خانوما بودن برا اونا شعر میگفتن بعد شعرم میدونیم مثل صدا و الان بوده مثل اینکه مثلا الان یه سلبریتی تو صدا و سیما بیاد بگه من عاشق فلان خانوم هستم یه دو مثلا بیتم شعر براش بگه یا از کسی براش بخونه ایشون میگه این الان موضوعیت نداره ما ازش بحث نمی کن. در بحث فحش ایشون میگه رو میگن چیجوری آخه فحش تکسب کسی تکسب به فحش بکنه بعد دیگه متنشون رو ایشون میگه بابا الان تمام روزنامه ها اصلا همین جوریه یعنی روزنامه اینو من خودم بودم توی جلسه خوشو اعتراف کردم گفتن که روزنامه نگار اصلا یکی از چیزایی که برش پول میگیره چیه میگن آقا یه مقاله نویس مال کن مقاله پول میگیره اصلا برای فحش برای تحقیر فرد برای ناسزایی به فرد پول میگیره یه کاریکاتور میزنه زمان خدا رحمت کن آیتولو مسبانه یادتون نمیاد مثلا ایشون یه کاریکاتور زدن نمیشن تن تنساه پول میگیره ایشون از این دقیقتا زیاد داره که موضوع حکم چیه و آیا اصلا به درد میخوره ما بحث بکنیم یا بحث نکنیم و تبعاتش چیه این در مرحله کار ایشون پس یک تعین سنخ موضوع گاهی اوقات ایشون میکنه دو گاهی اوقات ایشون در مرحله اول دقت در اون چیزی که موضوع حکم قرار گرفته میکنه عرض میشود که گاهی اوقات هم یک بارم من اون مقداری که حالا از مکاسه محرمی دیدم ایشون میاد روش ها رو نقد میکنه در همین بحث غنا، شما ببینید ایشون دونه دونه میاد روش هایی که نوع فقها ها اومدن غنا رو باش تعین معنی و موضوع کردن رد میکنه. من فقط یه تیکش رو برای شما بخونم خود اینجا هم عنوان زده تو خود کتاب الغنه هم عنوان زده ببینید راهکار گرفتن قدر متعقن صفحه 193 کتاب قنا ایشون اول کار در مراحل بررسی موضوع اول کار ایشون میاد راهکارهایی که دیگران اومدن تعیین معنا کردن نقد میکنه نقد راهکار مذكور یعنی قدر متعاقباً گرفتن در صفحه 194 راهکار رجوع به عرف دوباره نقد راهکار رجوع به عرف تو همون صفحه 194 در جلوتر من خوندم ایشون میاد در مراجعه به لغویون هم نقد میکنه بگه آقا این راهکار درست نیست پس توی مراحل مرحله اول گاهی اوقات ایشون میاد تعین سنخ موضوع میکنه گاهی اوقات میاد دقت میکنه که چی موضوع حکم قرار گرفته گاهی اوقات میاد روش هایی که دیگر فقه ها پرگاه میشه گفت کل فقه ها برای تعین موضوع استفاده کردن اونا رو نقد میکنه اینم این مرحله اول تو بحث شناسیه ایشون مرحله دو اتخاذ روش میکنه که من مثلا بحث سهر رو من خوندم که ایشون چی گفت گفت سهر موضوعی است که حقیقت شرعیه نداره حقیقت عرفیه داره من تا ما نمیتونیم از لغویون یا کلمات فقها به دلیل اینکه اختلاف فراوانی دارن و یک وجه محسو... زابط محسوس ندارن استفاده بکنیم و قدر متعقم بگیریم ما برای به دست این مرحله اول مرحله دوم اتخاذ روش برای اینکه که معنی و به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ بیریم سراغ عدله تو مرحله دوم نوعا ایشون اتخاذ روش میکنه تو الان همین بحث غنا ایشون اومد راه دیگر رو نقد کرد بعد میادی اتخاذ روش میکنه تو مرحله سوم تعیین موضوع میکنه. عرض کردم همه فوقا که من دیدم بررسی موضوع تعیین موضوع. اینکه بیا گاه اوقات بگه سنخ موضوع چیه؟ درست سنخ موضوع اینه ولی نمیتونیم بریم سراغ اون چیزی که موضوع از اون سنخه. نمیتونیم بریم سراغ عرفی که موضوع از اون سنخه. بعد بریم سراغ ادله. نمیتونیم بریم سراغ لغت که از اون سنخه. بعد بریم سراغ ادله. ارز می شود که بعد می رهد سراغ اتخاذ روش بعد میرن سراغ تعین موضوع اینم مراحل کار ایشون در بحث موضوع شناسی که این مراحل فرق می کرد انصافا ایشون در موضوع شناسی میشه میشه شه مكتبه مکتبه ارز می شود که دست شما خب من اینو اگه نگه اصلا نمیشه اینا رو باید بگم دوستانی که سوال دارن ما بعد از اطماع بحث در خدمتشون هستیم در اون موقعی که مقدسیتون گول میکنه نواز میرید بعد فکر این وقتانو بکنید دیگه یعنی همچه برنامه ریزایی رو از میکنم شما اگه که مجبوری رفتین مجبوری رفتین قبوله روش های تعیین موضوع یه وقت ایشون از لغت استفاده میکنه اینو همه آقایون دارن در بحث صبر ایشون از لغت استفاده میکنه موضوع صبر رو تعریف میکنه یه روش روش عرفش کافیه من ندیدم از غیر از ایشون فقط و فقط هم در بحث غنا ایشون اومده این کارو کرده در صفحه 199 بحث غنا ایشون میاد میگه که ما دو تا معنا برای غنا داریم یک معنا از لغت دو معنا از عرف در صفحه دیویس تمام این بحث ها به نظر من عرف شکافیه در صفحه دیویس از کلام شیخ اعظم شاهد میارن در درس بعدی از محقق اسوانی آنجفی صاحب روزتالغننافی بحث الغنه هم همچیزی در, در اونجا دوباره از ایشونم شاهد میارن که ایشون میگه من فکرم من اولین نفرم که فهمیدم قنا تا معنا داره بد دیدم نه آقا نجفی هم این بحث رو اشاره کردم اونایی که اسفانیه اشون اصالتا اسفانی ها تو اسفان میدین واقعا این شهر نخبه پروره من اگه شوشتری نبودم داشتم واقعا اسفانی باشم امتر تهران بزرگ شده خب دو دوباره صفحه دیویست دو ایشون دو تا از روایاتو میاره میگه که آقا ارز می شود که از این روایات دوباره استفاده میشه که بحث غنایی که گفته شد غنای لغوی نیست همین بحثی که ارز کردم الان بعضی تلاوات مجلسی و حرام میدونن. ایشون اون روایات رو می آره. بعد میگه این روایات با روایات حسن و صد معارضه بعد دوباره از روایات همین روایاتی که میگه قنای در قرآن حرامه هم از اون روایات حسن صد استفاده میکنه که این روایات هم نشون میده که این حرفی که من بهش درسته استفاده ابزاری از روایت عرض میشود که دوباره صفحه 209 اشاره به این که برای استفاده این معنای عرفی رجوع به لغت درست نیست چرا عرض کردم سپاهی معنی داره شما نباید بری سراغ فرهنگ معین این عرف دوباره صفحه 210 ایشون میگه که ما الان فهمیدیم که ما دو تا معنا برای غنا داریم یه معنای لغوی مثل مصحف که وضع اولیش برای کتاب بود یه معنای عرفی این آوازخانی مصحف وضع سانویش برای قرآن شد این معنای سانویی را از کجا باید بگیریم باید بریم از عرف بگیریم ایشون اینجا دوباره میره سراغ آقه عرف صفحه دیویست باز این نکته رو تذکر میدن که حسن صد دخالت در معنی عرفی نداره. صفحه 211 دوباره یه نکته دیگه عدم دخالت انتباق با دستگاه‌های موسیقی در معنی عرفی. دستگاه‌های موسیقی در معنی عرفی دخالت نداره. الان این کسایی که مثل قارش سبز شدن میکنن هیچ می‌کنن. هیچ‌کونیشون معلوم نیست اصلا تو این سبکای معمول بخونه. اصلا چیزایی که می‌خونن انطباق با دستگاه داشته بشن. الان که اصلا عرفی که انتقا با دستگاه نکرده باشه یه چرت و پرتی بخونه فقط وزنش خوب باشه به هم بخوره آخرش بالاخره یه جور به هم بخوره اینم تو معنی عرفی دخالت نداره بعدی دوباره بحث میکنه آیا اطراب در این معنای عرفی دخالت داره یا نه اینم دوباره مفصل بحث میکنه که اطراب در این معنای عرفی دخالت نداره تمام بحثای ایشون اگر یه دور تقریر منظم منسجم بشه این علایذ من از سوش در داره عرفش کافی میکنه در صفحه 213 دوباره ایشون میره یه سری شواهد میاره که آقا این چیزایی که ما گفتیم ببخشید 213 نیست نکاتی صفحه 221 این چیزایی که ما گفتیم اینا تو همه جا هست مثلا تداول مفهوم غنا در همه عرف ها میگن ایشون یه سری چیزای اغلایی استفاده میکنه که این معنایی که ما پیدا کردیم این معنای درسته روشهای های تعین موضوع یک استفاده از لغت دو عرف کافی در بحث غنا سه استفاده از عدله. ایشون در بحث سه من مطمو خوندم دیگه نمیخونم مفصل خوندم میگن ما سهر معنای عرفی داره ما از عرف نمیتونیم استفاده کنیم برای قدر متعیقن میریم سراغ عدله من تعالی نیدم کسی بگه من میخوام یه موضوع فقهی رو مشخص کنم میرم سراغ ادله یعنی میرم هم سراغ آیات هم روایات که ایشون میره سراغ روایات نتیجه نمیگیره بعد میره سراغ آیات از آیات محدودی سهر رو استفاده میکنه من ندیدم اگه شما دیدید به من نشون بدید در بحث غنا صفحه 246 تا صفحه 249 ایشون از ادله استفاده میکنه که یک قید رو توضیح بده ایشون یه بحثی مطرح میکنه لهو در غنا فقها گفتن غنای لهوی حرامه این لهوی که گفته شده یعنی چی بعد شاهد میاره ایشون که ما نمیتونیم بگیم که هر لحوی حرام است. پس هر غنای لحوی حرام نیست. پس این لحو بعد یه تفسیر درست کنیم. ایشون از آیه قرآن استفاده میکنه که تفسیر لهو بکنه. یه نکته این استش که ایشون برای تف... تعیین دقیق نظر فوقه ها از آیه قرآن داره استفاده میکنه. یه نکته دیگه این است که خودشون تصریح میکنه برای تعیین ملاک حرمت یک موضوع داره از آیه قرآن استفاده میکنه اینم من نایدم اینو که دیگه همه گفتن اولین بار کار کرده اینم یه, چیز، یه روش دیگه که ایشون داره استفاده از روایات برای تهدید موضوع و به آوردن معنا یک کلمه در زمان اهل بیت بحث قش بود مفصل خوندیم یعنی ایشون میره سر روایات برای تعیین یک معنای یک موضوع فقهی برای تعیین معنا از روایات استفاده میکنه من ندیدم تا حالا ممکنه فقیه موردی این کارو کرده باشه چیخ ازم در بحث کهانت این کارو کرده موردی ولی ایشون هر جایی یه نوآوری در سهر یه جور در قش یه جور در رشوه یه جور در رشوه همینطور ایشون دوباره من ارز کردم در رشوه ایشون مفصل روایات رو میاره که بگه رشوه فقط مخصوص حکم و قضاوت نیست از روایات استفاده میکنه برای تعیین معنا و حکمی که برای این کلمه اومده یه اینم یه نحوه استفاده است یه بار دیگه میگم استفاده از ادله برای به دست آوردن حدود اجمالی و تقریبی یا قدر متقن استفاده از ادله برای تفسیر یک قید یا ملاک حرمت استفاده از روایات ادله شامل آیات و روایات بگیرید حالا ببینیم اسم آیات و روایات دقیق تر ادله یعنی آیات و روایات اینجا فقط از روایاتشون استفاده کرد برای قشم و بحث رشبه فقط از روایات یه وقتای ایشون به نحو قرینه استفاده میکنه نه اینکه که بیا تعیین موضوع کنه نه قرینه قرینه را اصلشون از کجا آورده؟ مثلا ایشون در بحث تنجیم اصلشون از مصطلحات خود اهل تنجیم آورده خود ایشون تصریح میکنه در این بحث تنجیم داره تموم میشه ریه یه صلاحات بفسته از میشود شود که زیاد رفتیم. آنچه از مصطلحات خود اهل نجوم استفاده می شود تنجیم هم بر علم نجوم به معنای اخترشناسی شناختن این اجرامی که در آسمان دیده می شود هم بر آثار تکوینی این ستارگان و اجرام آسمانی در حیات انسان در محیط زندگی چه آثار محسوس و چه آثار غیر محسوس بر این هم تنجیم گفته می شود واقعا من این مقدار که تنجیم دیدم همه بحثای تنجیم یه طرف ایشون یه طرف و هم بر حکم کردن و قضاوت بر اساس آن آثار تنجیم اطلاق می شود. شیخ این معنای تنجیم رو بیشتر بررسی کرد حتی شیخ انساری اومد که تا اطلاق عرفی به نظر می داره منطقه شیخ از رای اطلاق عرفی رفت. ایشون اومده از خود مصطلحات اهل نوجون بعد دوره از لغتم همینو همینو استفاده میکنه. ایشون از لغویون شاهد میاره که تنجیم همین معانی رو داره. عرض میشود که اینم بله استفاده به نحوه تقریب ایشون در این ببخشید این مورد اشتباه شده. این مورد مورد جدایه. استفاده از مصطلحات خود اهل اون ال. من نایدم این کسی این کار رو بکنه مثلا در بحث سهر تا جایی که من یادم میاد ما کسی نداریم از خود کتب سهر مثلا بیاد نقل بکنه آقا فرق سحر و سیمیا و لیمیا و کیمیا و هیمیا چیه مثلا؟ یک کسی مثلا برو از خود کتابای اونا بگه من نیدم کسی این رو. استفاده از مصطلحات خود اهل علمم هم. یه راه دیگه که ایشون در تعین موضوع میاره در بحث روایات که بحث قبلی بود استفاده به نحو قرینه برای تقریب اینو دیگه من خسته نمی کنم دوستان رو در بحث تصویر و تصویرگری ایشون از روایات هی شاهد میاره که این تصویری که هی گفته میشه تصویر محرم است، محرم است محرم است، این تصویر یه معنای خاصیه. و یه معنایی نیستش که ارز می شود که معنی معمولی باشه. حالا من این تیکر فورا آن از روایات تصویر فهمیده می شود این است که یک بلیه عمومی که خوف شویی آن در جامعه اسلامی وجود داشته است که الان هم وجود دارد در صدر اسلام زمان پیامبر به نحوی در زمان صادق علیه السلام به نحوی وجود داشته که این روایت من همه از امام باغل و امام صادق علیه است و این روایت باب چهارم که روایات جواز همراه با کراحت است کراحت اقتنا اینها از حضرت رضا و احمه بد نقل شده ابتدای ورود تمدن غربی روم از طریق شام و حکومت بنی اومیه به داخل کشورهای اسلامی یک بلیهی در آن زمان بوده است گفتن چی آنچه از روایات فهمیده می شود؟ خیلی ایشون با این روایات نکته سنجی میکنه مثلا آقای میه میگه آقا تناسب و حکم و موضوع نداره ولی ایشون هی شاهد میاره به این تیکیره روایت به اون تیکیره روایت پس اینم تعین موضوع ایشون با این روش ها تعین موضوع میکنه یه بار دیگه عرض میکنم استفاده از لغت عرف شکافی استفاده از آیات و روایات که این استفاده از آیات و روایات یا برای به دست آوردن قدر متعقن یا برای تفسیر یک قید یا برای ملاک حرمت در موضوع یا برای تهدید موضوع و به دست معنای یک کلمه در زمان اهل بیت یا به نحو قرینه استفاده میشه این روش سوم ایشون روش چهارم ایشون همین بود که از مصطلحات خود اهل علم استفاده کردند و صلی الله علی محمد و آله It's holding